جمی نه خوشاور ها نفسیت تو تکلیم دلودی در برنامه قبل شنیدید که سلطان شیرازی که در شهر پیشاور با خطابهای مستدل خود به تبلیغ مذهب اهل بیت که مستلام می پرداخت، با دعوت عدهای از علمای اهل سنت ایالت پنجاب شروع به مناظره با آنها کرد. در قسمت قبل، سلطان به تعدادی از شبهات آنها از جمله نرسیدن نسب سادات به نبی اعظم و صحیح نبودن سلبات برای حضرت امیر، و سایر ائمه علیه السلام پاسخ داد و جالب توجه اینکه تمام پاسخها را از کتاب های اهل سنت انتخاب میکرد تا بهانهای برای نپذیرفتن آنها وجود نداشته باشد در پایان قسمت قبل شنیدیم که علمای اهل سنت با شنیدن اذان نماز اشا مناظره را نیمه تمام گذاشتند تا نماز بخوانند و حالا ادامه ماجرا چون دیدیم اگر آقایان بخواهند به مسجد بروند و برگردند وقت زیادی فوت می شود در همین اتاق کناری فضایی را برای نماز خوندن آقایان فراهم کردیم فقط جناب عبدالحی که امام جماعت هستند تشریف کردند سلامون علیکم اجازه هست در مجلس آقایان بنشینم؟ بفرمایید جناب نواب همینجا کنار حقیر بنشین جناب صاحب مرا با نام می شنازند. جناب میرزا احمد و میرزا گعوب خان قزل باش شما را به حقیر معرفی کردن مم. بسیار خوشحال شدم که یکی از بزرگان شهر در مجلس ما حضور دارد راستش در این چند روزی که حضرتتان به پیشاور مشرف شده اید حقیر یا در مجلس خطابهتان تان در امامبارا حاضر شدم یا تحریر آن را در روزنامه در نجف خاندم بسیارم تحت تاثیر قرار گرفتم حقیر از خودم بیانی ندارم هر چه میگویم از آیات مصحف است و روایات صحیحه عجیب است با اینکه حقیق اهل مطالعه و استماع موعظه بودم هیچگاه چنین سخنانی را از علمای خودمان نشنیده بودم نباید هم شنیده باشید ها بگذریم فعلا اگر مسئله هست در خدمتم من نمازم را فرادا خواندم تا زودتر خدمت برسم و عرض کنم اگر اجازت فرمایید من نیز در میان مجلس سؤالاتم را بپرسم جای بسی خوشحالی است که شما با این ذهن جست جوگر در حلقه اصلی مناظره باشید مسلما بر رونق مجلس نیز افسوده می شود البته من در حد مناظره با مقام عالی شما نیستم فقط دلم میخواهد مطالبم را بدون واسطه از جناب قبله کعبه بپرسید غیر در خدمتم برای این که دوستان هم مذهبتان تحریک نشوند در کنار علمای خودتان بینشینید اگرچه خدا شاهد است که بنده شایقم شما اینجا نزد من باشید ظاهرم نماز حضرات تمام شده اجازه بدهید پذیرایی مختصری از دوستان انجام شود و بعد مجلس دامه یاود هر طور سلاح می دانید میردا با اجازه چه که لغمه ای نخوردی صفله نهارت هم که دست نخورده است نمیخواهی به من بگویی چه شده؟ گیتاجان دهانم غفت شده آب هم به زحمت از آن پایین میرود مگر دیشب شب در جلسه مناظره چه گذشته که این گونه شده ای؟ خستش جان حال کسی را دارم که بعد از چهل سال در خانهای با خیال راحت زندگی کرده و بزرگ شده اما اما ناگهان به خانهش، به پدرش، به مادرش به همه چیزش شکل در هم بیتو آخر چه شده که نواب عبدالقدیخان که به سلابت و قدرت سکری جسمی در تمام پیشابر شهرست به این حال افتاده یا به این از ابتدا همه چیز را برایت بگو بیا سوستر بگو ببینم چه شده راستش از روزی که شنیدم یکی از علمای مسلمان با علمای هندی و براهمه در نو به مناسره پرداخته و آنان را مقدوب استدلال خود کرده است. دلم میخواست او را از نزدیک ببینم و با او سخن بگویم یادم هست اه. حتی نیت کردی که به دهلی یا سیالکوت یا کشمیر بروید اه. و جناب صاحب را از نزدیک ببینیم هنوز همان روزنامه را رو دارم که در آن مناظری جناب سلطان الوائزین در حضور گاندی چاپ شده لحقایی به آن نگاهی میکنم. خب حالا که جناب صاحب به پیشاور آمده یاد گذشته ها کردم چه فایده ای دارد؟ خب گیتا جان بعد از چند بار حاضر شدن در امانباره دیشب در مناظر تصمیم گرفتم از نزدیک با ایشان آشنا شوم. و در همان ابتدا مطلبی را که مدت ها ذهنم را مشغول کرده بود با قبله صاحب مطرح کردم قبل صاحب که آقایان چای میل میکنند اجازه میخواهم خارج از بوزو مطلبی از شما بپرسم بفرمایید برای استماع حاضرم سوال مختصر است ولی مدت هاست در دل من مانده و فرصتی به دست نیامده خواستم عرض نمایم چرا آقایان شیعه برخلاف سنت رسول الله نماز ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشا را جمع میخونند چه کسی گفته که سنت رسول الله چونین بوده؟ ایشان هم گاهی نمازها را جمع و گاهی جدا از هم میخوندن خب علمای ما به خلاف فرمایش شما معتقدند این طور نیستینا به حافظ؟ بله حضرت به در سفر و مواقع عذر از قبیل باران و غیره نمازها را جدا میخوندن و این هم یکی از بدعتها و تحریفات آقایان شیعه است باز هم که بدون مطالعه برادران شیعه خود را به بدعت متهم کردید. در حالی که در روایات خودتان هم آمده که حضرت رسول در غیر سفر و غیر اوضر هم نماز را به صورت جمع اقامه می فرمودند. حتما جنابتان روایات خود را با احادیث صحیحه ما اشتباه گرفته اید. جناب شیخ سلام اشتباه نگرفتم و اکنون به فضل خدا، همه برادران را به این حقیقت آگاه خواهند که سراپا گوشیم جناب صاحب به خصوص من که مدت هاست در پی پاسخ این سآل مسلم ابن حجاج در صحیح خود با نقل سلسله روات از عبدالله ابن عباس آورده است که حضرت رسول نماز ظهر و عصق و مغرب و را بدون آنکه از چیزی بترسد یا در سفر باشد به صورت جمع و یک جا به جا می همین معنا در مسند امام احمد ابن هنبل با اندکی تغییر آمده پس چرا این خبر به ما نرسیده است رسیده است و شما نیز آن را دیدید ولی اینکه چرا آن را کتمان می‌کنید مقوله‌ای است که باید به وجدانتان مراجعه کنید جناب صاحب آیا روایت دیگری برای تکمیل ادله خود دارید روایات فراوان است جناب مالک در باب الجمع و بین الصلاۃین همین روایت را آورده و این را هم اضافه کرده که ابو زبیر میگوید از سعید ابن جبیر پرسیدم چرا پیامبر نماز را جمع مینمود سعید به نقل از ابن عباس پاسخ داد زیرا پیامبر نمیخواست احدی از امتش در سختی و مشقت باشد خب پس چگونه ممکن است احادیثی از زمان رسول خدا بر عمل به جمع رسیده و در کتاب ها مکتوب باشد ولی علما در حکم و عمل برخلاف آن عمل کنند این معنا را باید از علمای خودتان بپرسید که بر وجوب جدا خاندن نماز ها حکم اند و ما را به بدعت متهم می کنند. به فضل خدا در ادامه خواهید فهمید که از این قسم مطالب نزایر بسیاری وجود دارد چه تهمت هایی که به شیعیان زده شد و ما مظلومانه دفاع کردیم سخنان علمای خودتان باعث این مسائل شده است می شود مثالی بزنیم؟ همین دیروز شما در حین سخنرانی در امامبار فرمودید که ام. علی کذم الله و به مقام نبوت نائل بوده و همچنین مقامش از سایر انبیاء اعظام برتر است. چون این مطالب سرشار از قلوبی در مکتوبات شیعیان بسیار دیده می شود که باعث گمراهی جمعی از مسلمانان شده است. اولا برای اثبات اینکه که حضرت امیر مقام نبوت داشته شما را به حدیث شریف منزلت که تواترش نزد علمای شیعه و سنی ثابت شده است ارجامی دهند. که حضرت رسول فرمودند یا علی انت منی به منزلت حارون من موسا سهنت این خبر شاید برای شما ثابت باشد ولی برای ما در حد خبر واحد است آقایان از ابتدا بنا را بر این گذاشتیم که لجاجت نکنیم اولا که نزد علمای شما خبر واحد مقبول است ثانیه بنده به شما ثابت میکنم که این روایت مستاق خبر واحد نیست بلکه فهول علمای شما آن را تصدیق کردن ام. اگر سندی دارید بفرمایید آماده ی استماعی استاهه. بخاری در جلد سوم کتاب مغازی و مسلم در جلد دوم صحیح خود و امام احمد ابن حنبل در جلد اول مسندش و سیوطی در کتاب تاریخ الخلفا و امام فخر رازی در تفسیر مفاتیح القیل ببخشید جناب صاحب ببخشید که فرمایش شما را قطع کنم آیا تمام این کتاب ها که نوشته ی علمای بزرگ ماست این معنا را تعیید کردن؟ جناب نواب نه تنها این اده بلکه بیش از بیست و پنج نفر دیگر که جملگی از کبار علمای اهل تسنن هستند همین معنا را با اندکی تفاوت در تعبیر تایید می کنند برادران همه شما را گباه می‌گیرم. آیا این همه سند که اگر لازم باشد تک تک آنها را برای شما میگویم اثبات یقین و تواتر نمی کنند؟ آیا حدیث مبین این نیست که علی علیه السلام مانند هارون دارای مقام شامخ نبوت است با این تذکر که پس از حضرت رسول پیانبر دیگری مبعوث نشدند ولی ظاهرا شما یک طرفه به قاضی رفته اید جناب ابوالحسن عامدی که از علما و از متکلمین متبهر است این حدیث را با دلایلی رد کرده اناه میبرم به خدا از لجاجت آخر برادر عزیز من این همه سند از بزرگانی آوردم که شما چشم بسته سایر روایاتشان را میپذیرید. بعد بعد جنابالی از آدمی که ابن حجر از قلانی او را تارک و و دارای عقیده فاسد معرفی می کند دلیل میآورید؟ آورید یا اول لبصار. آیا میخواهید همین حدیث منزلت را به روایت خلیفه عمر ابن خطاب برایتان تان بخوانم؟ هم... همین روایت را؟ و این فرمایشتان مستند باشد و این می دانم می زود قضاوت نکنید که باعث پشیمانی خواهد شد عبال لیس نصر ابن محمد سمرغندی در کتاب مجالس و ابن سباق مالکی در الفصول المهمه و ابن ابي در شرح نهج البلاغه و بسیاری دیگر روایت کردند که عمر ابن خطاب گفت روزی من و ابوبیدیه جراح و عده‌ای از اصحاب حاضر بودیم و پیامبر بر علی ابن ابی طالب تکیه داده بود آنگاه نبی اعظم بر شانه‌های علی زد و فرمود یا علی تو برای من به منزله هارونی نسبت به موسی و درو گفته کسی که گمان میکند مرا دوست دارد در حالی که تو را مبغوز میدارد صرف نظر از سند که ما هنوز در آن شبهه داریم بفرمایید چگونه این حدیث بر واجد بودن مقام نبوت توسط علی کرم الله وجه دلالت دارد اولا اگر هنوز هم در سند مناقشه دارید شما را به وجدانتان وا میگذارم ثانیاً این حدیث سه خصوصیت برای حضرت علی به اثبات میرساند. اول مقام نبوت در معنا دوم مقام خلافت در ظاهر و سوم برتری آن حضرت بر تمام امت از صحابه و غیره و بیشک می گفت علی علیه السلام یگان رادمردی بود که به استثنای مقام نبوت خاصه در تمام مراحل کامله و صفات مخصوصه با رسول الله شریک بوده. پیمس ترجمه ما زیاد میشود از این که میبینیم شما این گونه در مورد علی کرم الله وجه قلوف میکنید. این قلوف نیست. چون عقلا باید خلیفه رسول در جمیع صفات مثل و مانند پیامبر باشد. البته این بدان شرط که خلیفه از راه درستش انتخاب شده باشد نه از طریق ناسوات. جنوب آیا علمای ما نیز این معنا را تایید میکنند من بر تعهد خود پایبندم و فقط به کتب اهل تسنن استشهاد می کنم امام سعلبی در تفسیر و عالم فاضل سید احمد شهابدین در کتابش همین مطلب را آوردند و در آخر در هفت بند نظیر بودن پیامبر و علی صلوات الله علیه را برشمرند که بنده برای مزید اطلاع فهرسوار میگویم گویم بل. می توانید خود به این کتابها مراجعه کنید اول بنابر آیه تهارت علی در پاکی نظیر رسول خداست دوم در اصل نسب و آباب و اجدادشان نظیر یکدیگرند. سوم هست سوم بنابر آیه پنجاه و پنج سوره احزاب امیر المؤمنین نظیر پیامبر در ولایت امت است. چهارم... کمی سبت کنید این گونه که نمی شود در شرافت و کرامت علی رضی الله عنه شکی نیست ولی نه اینکه جناب صاحب هر را بخواهد به فضیلت ایشان اضافه کنند شما با کدام بخش عرایز بند مشکل دارید؟ اینکه شما شعن نزول آیه پنجاه و پنج احضاب را متوجه علی بن ابی طالب کردید شما نیز می‌دانید که جمیع علما مگر ادعی اندک به این معنا معتقدند به هر حال من دلایل خودم را مختصرا بیان می‌کنم ابن مغازلی فقیه شافعی در مناقب و سیوتی در ادل المنصور و احمد صالبی در تفسیر کشف بیان و عدهای دیگر از ابوزر غفاری روایت کردند که روزی پس از نماز ظهر سائلی برخواست و طلب کمک کرد اهدی به او چیزی نداد فقط امیر المؤمنین در رکوع نماز با انگشت به او اشاره کرد و سائل انگشتر را از دست حضرت دارد این جای فرمایشتان چیز غریبی نبود کما بهش نیز این داستان را شنیدیم ان همه از سابرین جناب شیخ عرض در این هنگام حضرت رسول سر را به آسمان بلند می کنند و آیاتی را می خانند که در آن به قضیه دعای حضرت موسی هنگام عزیمت به سوی فرعون و طلب وزیر اشاره دارد سپس پیامبر دعا می کنند پروردگارا من محمد برگزیده و پیغمبر تو هستم پس سینه مرا گشاده گردان و امر مرا آسان کن و برای من وزیری از اهل من قرار بده که آن وزیر علی باشد و به وجود او پشت مرا قوی گردان ابوذر میگوید هنوز دعای پیامبر تمام نشده بود که آیه ولایت نازل شد که دقیقا به ماجرای انگشتربخشی حضرت علی اشاره دارد عجیب است این اولین بار است ما به این شهر فضیلت مولا علی کرمال الله و وجهه رو می شننیم. باور نمی کنم. باور نمی کنم این معانی در کتاب های ما بوده است. نه تنها در همین اسناد که ذکر کردم بلکه علمای دیگری نیز با تغییراتی همین مفهوم را ثبت کردند. حال آیا شبهی بر خلافت و وزارت و برتری امیرالمؤمنین بر سایر صحابه وجود دارد آیا حتی نزدیک به این معانی برای فرد دیگری در روایات آمده آیا کسی را میشناسید که هزار یک این فضائل را داشته باشد فضائلی که به اعتراف دوست و دشمن رسیدند یعنی جناب حافظ محمد رشید و شیخ عبدالسلام به سوالات صاحب قبله پاسخی ندادند؟ پاسخ دادند و مرتب هم در روایات می می‌کردند. ولی چون صاحب با نشانی دقیق از کتب علمای کبار روایاتش را میخواند، بر همه معلوم شد اشکالاتشان از دایره عقل و منطق بیرون است. پس برای همین مجلس این همه به کشی؟ باور میکنی گیتا آنقدر بحث جذاب شده بود که هیچکس در مجلس متوجه گذشته زمان نشد نمیدانم صحبت از چه شد که نگاه های ما به ساعت افتاد و دیدیم شب از نیمه گذشته لاجرم ادامه بحث به امشب مکن شد آیا آیا امکان این هست من نیز در این مجلس حاضر شوم؟ خب من در مجلس اثری از نصفان ندیدم مگر این که اهل خانه جناب میرزا خان در پرده مباحثات را استماع کرده باشند که البته من از آن میخبرم حیف شد دلم میخواست از جزئیات مناظره با خبر باشم گیتاجان <تصفيق> در تمام پیشاور زنانی چون تو کمتر یافت میشوند که هم از نعمت کتابت و قرائت برخوردار باشند و هم این گونه در مسائل کنجکا. چه فایده؟ چه فایده که نمیتوانم در چنین مجلسی حاضر باشم. نگران نباش. دیشب دیدم چند نفر توند نویس جزء به جزء مناظرات را مکتوب می کنند. راستش شنیدم که قرار است مطالب جلسه دیشب در روزنامه چاپ شود. کسی را فرستادم به محل تب آن را بخرد و بیاورد. چه خوب. خدا کند زودتر بیاید دلم میخواهد زودتر شب شود و باز هم از سخنان سلطان الوائزین بهرمند مند تحجب می کنم تحجب می کنم چگونه کسی که فقط سی بهار از سنش میگذرد گذارد این گونه بر کتب اهل سنت بیش از علمای خودمان مسلط است واقعا تحجب کنم بنده به اتفاق جناب حافظ امروز در کتب مختلف بسیار تتبع کردیم و دست آخر به این نتیجه رسیدیم که برخلاف نظر شما که دیشب سعی داشتید از بیان حدیث منزلت خلافت بلافصل علی کرم الله و كرم مراد کنید این حدیث جنبه عمومی ندارد و در قصفه تبوک ساده شده است فکر می کنم آقایان شرط خود را فراموش کردند و از در اناد وارد شدند دیشب به نظر می رسید مجاب شده اید اما امشب سفر دیگری به دست گرفتید شما اگر پاسخی دارید فرمایید تا استماع کنید اگر نه اقرار بفرمایید دیشب از خلط بحثی که پیش آمد سو استفاده کردید و قصد بر تحریک آمه بر ضد آلمانشان را داشتید اعتراف کنید آقا اعتراف می کنم اما نه به آنچه شما می خواهید. به حقیقت اعتراف می کنم آه. خواهش می کنم از بازی با کلمات دست بردارید و اگر استدلالی دارید بیان بفرمایید. به فضل خدا و با استفاده از کتب علمای خودتان اثبات می کنم این حدیث عمومیت دارد و اختصاصی به قضیه تبوک ندارد